فصل سفم تعریف بیشعوری بزرگترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان را خلق کرده است بلکه این است که چرا بیشعورها را انقدر گستاخ و منفور آفریده است دیوار نوشته ای پشت یک در در کلیسای بسند تا اینجا بارها و بارها از اصطلاحات بیشعور و بیشوری استفاده کردیم بدون اینکه تعریف دقیقی از اونا ارائه کنیم. از خود اسمان نمیشه به تعریف مسمای اونا رسید یکی از راههای عمومی شناختن بیشهورها شناسایی موقعیت‌های بروز بیشعوری مثلا خود من در خوابم نمیتونم تصور کنم که در دادگاه کسی جز یک وکیل بیشعور از من دفاع کنه هیچ تعریف مختصریم نمیتونه پیچیدگی شگفت‌آور پدیده ی بیشعوری رو بیان کنه اما این مسئله حل نشدنی نیست بسیاری از مردم عقیده دارن شاید من نمیتونم بیشعوری رو تعریف کنم اما قطعا وقتی بیشعوری رو ببینم میشناسمش. و این سخن درستیه. تقریبا همه در این امر اتفاق نظر دارن که بیشعور کسیه که رفتار وقیه و نفرتنگیزی رو به صورت کاملاً ارادی و عمدی از خودش بروز میده و از ایجاد اختلالی که در کارها به وجود آورده و آزاری که به دیگران رسونده قلباً خوشحاله. البته همیشه منتقدانی هستند که به این نوع تعریف معترزن و اونو از زبان یک درمانگر متخصص زیادی دم دستی و گل و گشاد میدونن. پاسخ علمی منم در مقابل اینه که اونقدر اعتراض کنن تا جونشون در بیاد. دیگران اعتراض میکنن که کلمه بیشعور واجه آمیانه نسبتا جدیدیه که فقط برای تحقیر و استهزاب کار میره. و به همین دلیل درست نیست که بنوان اصطلاحی پزشکی به کار بره چون ممکنه باعث جریحهدار شدن احساسات بیماران بشه روشنه که این جماعت چیز زیادی در باره بیشعوری نمیدونن و این واقعیتو که بیشعورها هیچگونه احساساتی ندارن در نظر نمیگیرند. به عبارت دیگه احساسات یک آدم بیشعور تا زمانی که او در مسیر درمان و بهبودی قرار نگیره اصولاً غیر قابل جریه دار شدنه بعضی میگن که واجه بیشعوری خیلی سابجکتیو و ذهنیه گویا بیشعورا فقط در نظر ناظر وجود دارن شخصاً به عنوان یک مقعد شناس سابق معتقدم که این نظر فقط به درد استعمال به گویندگان این قبیل حرفای قلمبه و سلمبه میتوره فکر میکنم که با این اصاف باید مطلبی رو روشن کنم و اون اینه که حفظ و استعمال واجه بیشعور در درمان این بیماری ارزش و اهمیت بسیار زیادی داره. همونطوری که مثلا نمیشه در درمان بیماران مبتلا به پارانویا این اصطلاح رو نادیده گرفت، در درمان بیشعوری هم نمیشه این واجه کلیدی رو حذف کرد. منتها بیشوری بیماری کاملا مشخص و معین نیست. درسته که مردم عادی خوششون نمیاد که بیشور نامیده بشن. اما مردم عادی که بیشور نیستن، بیشعورها پر رو، نفرت انگیز، ترسناک و متکبرن و باید اسمی روشون باشه که دست کم اونارو کمی به خودشون بیاره. بسیاری از مردم الکل نوشن، اما هیچکس نمیخواد الکلی نامیده بشه. و درست به همین دلیل، اولین مرحله از برنامه ای ترک الکل اینه که شخص قبول کنه که الکولیه. از همین رو آدم بیشعور، باید اولین گام درمان و بهبودیشو حتما با گفتن من بیشعورم آغاز کنه. و حتی گفتن جملات مشابهی نظیر من آدم وقیهیم اصلا اون اثر لازم رو نداره در حقیقت آنچه باعث اشتباه این خوردگیران می‌شود آن است که هنوز درک نکردان که بی‌شعوری یک بیماری است و نه مثلاً ادب نداشتن بی‌شعوری حتی گرایشی عادی به سرکشی و تمرد هم نیست اینا اختلالات شخصیتیان. در حالی که بی‌شعوری نوعی اعتیاد به قدرت، تغییر و سرکوب کردن سایرین، نشناسی بیحد و شهوت تسلط بر دیگران این بیماری تعادل درونی قربانیش رو برهم هم میزنه و او رو به بیچارگی و بدبختی میندازه تا زمانی که آدم شود و اعتراف کند من بیشعورم. بسیاری از انسان در سراسر جهان با این عقیده من موافق هم. یه بار زن خانداری با عصبانیت به من گفت هر کسی گفته هیچ بیشعوری در دنیا وجود نداره خودش خودشم بیشعوره. من سه تا بچه‌ی بی دارم و هر روز دارم هر چهارتاشون رو تامل می‌کنم. آخه شوهر من بی پیشخدمتی پیش خدمتی در یکی از شعبه‌ی مک‌دونالد میگفت آدمای های شعور رو از یک مایلیام میتونم بشناسم. از اون الگاه‌ی اتو کشیده یان که اگر دوبل دیر بشه، آسمون رو به زمین میاره. یکی از بیشورای تحت درمان میگه تا زمانی که شروع به درمان نکرده بودم هیچ تصوری از اینکه چند نفر دیگه بیشورن نداشتم اما مدتی که گذشت فهمیدم که تمام دوستانم من بیشورن ولی وقتی بهشون پیشنهاد کردم که با من در جلسات درمانی شرکت کنن فقط مثل بیشورا به هم خندیدم یکی دیگه از بیشورای تحت درمان میگه به خاطر بیشوریم شغل خانواده ما از دست دادم. میخواستم به همه ی دنیا مسلط باشم در حالی که حتی نمیتونستم به خودم مسلط باشم. یه معتاد بدبخت و ذلیل بودم. خیلی وحشتناک بود. بعضی از درمانگرا حتی تا اونجا پیش رفتن که دعا میکنن همه ی آدم فقط کافیه که شناسایی بشن. احتمال داره که این نظریه درست باشه. دستکم در مورد وچلا و دلال ها. تاریخ چه بیشعوری بیشورا همیشه وجود داشتند و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارند. تمام اونچه چه در تاریخ بیشوری باید دونست همینه. نشانه های بیشوری اپیدمولوژی بیشوری نشون میده که افراد بسیاری در معرض ابتلا به بیماری بیشوری قرار دارند گروه کسیری از مردم به کارهایی مشغولن که احتیاج به استعداد خاصی نداره. نظیر کارمندان دونپاگه واعزان اخلاقی مددکاران اجتماعی و تمام کسایی که حتی به قیمت سربریدن دیگران میخوان جهان رو نجات بدن اصولاً هر کاری که در رابطه با قانونه به ویژه اگر با نظارت و اجبار همراه باشه خطر بیشور سازی رو در خودش داره اما بیشترین میزان خطر ابتلا در حرفه ممیزی مالیات دیده میشه به که به این حرفه بعد از چند ماه باور میکنند که بیشعور پسوند اسم اوناست. نتایج تحقیقات گوناگون در این زمینه نشون میده که بیشک در میان کسایی که مدرک دکترای روان پزشکی دارن هم تعداد زیادی بیشعور وجود داره. یکی از تحقیقات مفید در این زمینه که به بررسی بیشورها در میان ما می پردازه تحقیق دکتر اچام. ایم رویده. دکتر روید استدلال و اثبات میکنه کنه که بیشورها کسایان که حرس مقام و قدرت دارند. او در تحقیقات خودش هیچ سیاستمدار مدار، یا پزشکی و نیافته که به خاطر سیاست و از یا تبابت بیشعور شده باشه. بلکه اونا به خاطر بیشعوری خودشون به سمت شغلایی رفتن که بتونن بر روی مردم تسلط داشته باشن و با وجود حقارت بر دیگران حکم برانند مانند بسیاری از بیماری ها هم ممکنه به عرض برسه. بسیاری از بیشورها این بیماری رو از پدر یا مادرشون به عرض بردن البته بعضی از فرزندان افراد بیشعور آنچنان از رفتار بیشعورانی والدینشون زده میشن که از هر خصوصیت ای اجتناب میکنن اما بیشترشون به ویروس بیشوری آلوده و مثل والدین عوضیشون میشن یکی از آسونترین راه‌های شناسایی بیشورها تحقیق درباره خصوصیات جاه‌طلبانه‌ی اوناست بیشتر بشورا رو میشه از روی رفتار تهاجمی و اخلاق قلدرمعابانه شون شناخت اگه با گردن کلفتی و ترسوندن دیگران نتونن کارشون رو به انجام برسونن حقه سوار میکنن یا قانون و مقررات رو طوری انگولک میکنن که نتیجهش به نفعشون بشه در مواقع ضروری اهل جیغ کشیدن لگت زدن و خودشون رو به موش مردگی زدنم هستن نیکیتا خروشچوف وقتی با لنگ کفش روی میز سازمان ملل کوبید و اعلام کرد که قرب رو به خاک خواهد سپرد یکی از نمونه هاگ اینی بیشعوری در مدیاس جهانی بود وقتی که بیشعوری بیشعورها به روشون اوورده بشه و به اونا بابت رفتارشون تذکر داده بشه، بلا فاصله شروع به انکار همه چیز میکنن و به سرعت طلب کارم میشن. یعنی شروع میکنن به انتقاد از کسی که گفته بالای چشمشون ابروه و به اون میگن که آدم وقیح و گرزورزیه. اگرم قادر به انجام هیچ کدوم از این کارا نباشن، جوش میارن و میگن که اینا همگی حاصل توطعه و دسیس است و اونا بیگناه مثل تمام اعتیادها ها، مسئله که انکار در بیشعوری هم مسئله مهمیه. بیشعورا قبول نمیکنن که باید مسئولیت پذیر باشن یا دستکم زیر حرفشون نزنن و حاضر به پذیرش اشکال و اشتباه در کارشون باشن. بدتر از همه این که حتی حاضر نیستن قبول کنن که به هر حال به عنوان یک انسان وذاکف و تعهداتی دارند که باید به با اونا عمل کنن و پایبندشون باشن بدیهیه که چنین آدمایی با یک دستور کار معمولی اصلاح نمیشوند. بیش بیشعور برای خودشون قواعد ای دارند که طبق اون رفتار میکنن. بعضی از این قواعد از این قرارن یک، تمام مشکلات را دیگران به وجود آوردن دو، اصلا نیازی به ریشه یابی و حل مشکلات نیست فقط یکی رو پیدا کن که تقصیرها رو گردنش بندازیم سه، کم نیار تمام کاستیا و خطاها رو میشه در پشت نقابی از وقاحت و گستاخی پنهان کرد هر چقدر جرمت بزرگتره با یک پرویت پر هم بیشتر باشه 4. تمام قوانین برای این به وجود اومدن که نقض بشن اما فقط تو این حق داری اگه کسی دیگه این کار رو انجام داد دودمانش رو به باد بده پنج اگر از قانونی خسته شدی مطابق نیازت یکی دیگه, دیگه بساز اما به محض اینکه که به خواستت رسیدی اون رو هم نقض کن شش هرگز در توانایی در به دست آوردن هر چیز کثیفی که اراده کنی شک نکن. خود من بیشعور و بیشعوری رو بر پایه‌ی این گونه مشاهدات تعریف کنم. یعنی معتقدم برای تعریف بی به جای پناه بردن به تعاریف جامع و مانعی که مرسومه، با به صفات و علائم بی و بی پرداخت. بیشورا کسا یه که فکر میکنن قانون در رابطه با اونا تعریف و معین و اونا تافته که جدا بافته که حق انجام هر کاریو که اراده کنن دارن. بیشوری نوعی بیماریه که قوه تشخیص و نظام عرضش گذاری رو آلوده میکنه. و باعث میشه تا این افراد هر کاری رو بدون شاگستگی انجام اون و بدون زره احساس گناه شرم یا پشیمانی انجام بدن. آیا واقعا بیشعوری مرزه؟ پاسخ من به این پرسش یک بله قاطع و بلنده. بیشعوری مرزه وقاحت و سوء استفاده از دیگرانه. آدم بیشعور نمیتونه به دیگران گیر نده. انگار اگه دست از اشکالگیری برداره یا دیگران رو تحقیر نکنه جونش در میاد دلیل دیگر در اثبات این مدعا که بیشعوری بیماریه و باید با اون مثل بیماری رفتار کرد خصوصیت افزاگش تدریجیه اونه به این ترتیب که اگر بدون درمان رهابشه مؤزل بیشعوری عمیق تر میشه مثلا در تجارت بیشعور های خورد میکنن می که به بیشعور های طراز اول و بزرگ تبدیل بشن. همین مسئله بیشعوری رو به یک موزل بزرگ اجتماعی تبدیل میکنه. ناگهان ممکنه یکی که می تونه فقط صد نفر رو در هر روز بدبخت کنه ترقی کنه و قدرتی به دست بیاره که بتونه روزانه هزار نفر رو بدبخت کنه. مشکل درمان بیشعوری اینه که آدم بیشعور معمولا قبول نمی کنه که بی اگرم عاقبت این واقعیت رو به تدریج قبول کنه، باز تمایل داره که تقصیر اون رو به گردن دیگران بندازه. از این رو صرف درمان رفتارهای آشکارا وقیهانه و تهدیدآمیز بیشعورها کافی نیست. چنین تلاشهایی فقط منجر به تولید نوع آبزیر کاهتر و هرفی از بیشعورها میشه که در مقابل هر نهی و اعتراض مسونیت خواهند داشت. به که چونین کارهایی باید قوه تشخیص و نظام ارزشگزاری گذاری اونا رو درمان کنیم و کاری کنیم که با وجدانشون که سالها با اون سر و سرکاری نداشتن ارتباط برقرار کنن. باید خساگل انسانی بیشعورها رو احیا کنیم و شاید چنین کاری طولانی و طاقت فرسا باشه. از سوی دیگه این بیماری به شدت واگیر داره. تا اونجا که حتی ممکنه یک درمانگر قوی و با اراده به راحتی تحت تأثیر استدلال ها و دفاعیاتی یک بیشعور قرار بگیره و تا اونجا پیش بره که بعد از مدتی او هم مثل بیشعور رفتار کنه به این خاطره که ما باید بیشعوری را از حالت تابو خارج کنیم و اون رو با شفافیت نمایش بدیم نباید از نامیدن بیشعور ها به نام بیشعور شانه خالی کنیم زیرا همین ملاحظه ها و تعارف هاست که باعث میشه بی ها بیشتر و بیشتر در بی غرق بشن مدت های مدیدی بی یک بیماری اسمشون نبر بود اما حالا زمان اون رسیده که واقعیت ها درباره این بیماری با شهامت پذیرفته بشه و درمانش آغاز بشه اگه دلمون برای خودمون نمیسوزه باید برای آیندگان هم که شده این کار رو بکنیم دنیا در خطر